أعوه بالله من الشنقان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم القائل الله. نور يغمر كل انقطار الريق وانه ابصار القلوب حتى تخرجت مشاور القلوب النور فتصل الى معدن العظمه وتصير الارواح معلقه على سقف السكن مخونه و صفات قاضل و به تعبیر امروز رئیس قوه قضائی بحث میکردیم و بعد از بیان مفردات و کلمات کلیدی بحث پری از کلمات عاظم رو و فاها رو وحیانا بهزی آمه رو نقل کردیم و گفتیم که چون در منابع ما از مباسفات رئیس قوه قضائیه یا رئیس جمهور یا رئیس مجلس سخنی میان نیامده هم این نیست که بگیم دین شریعت ناقص است علتش این است که اینها ارتباطی به نظام قضایی نداره در واقع تفکیک قوا از نوع طراحی الگو برای تحقق نظام می شود به اشکال مختلف وچ رو اعمال کرد دولت اسلامی رو تشکیل داد یک سلسله ثابتاتی داره حکومت دینی اونها باید همیشه و در همه شرایط و در هر الگویی که برای اجرا طراحی می‌کنیم حفظ بشود یه سلسله متغیراتی هست یا یک سلسله جهاتی که مربوط به اقتزاعات اونها ثابت نیستند یکسان نیستند متنوع و متکثرند و غالبا جهات شعری ثابتی نیستند جهات در واقع هند و احیانا عقلی‌اند اینکه مثلا سوسیال سوسیالیست مسائل مثلا ادعای غربی ها که حکومت رو به چند قطب مستقل به عنوان چند قوه به تقصیب تقسیم میکنن این یه پدیده اوغلایی است چهار سوابح دیگه یه الگوی دیگه مطرح میشه این از میلان میره اون که همین تقسیم قوا هم در کشورهای مختلف و مدعی متفاوته بعضی به قدرت رو به تعبیر خودشون به سه, سه قوه تقسیم میکنند مثلا بر اساس اینکه یک قوه واضحه قانون است قوه دیگر مجری قانون است قبعی سوم مدافع قانون است قوه مغننه و مجریه و قضایی درست میشه در همین دوران کشورهای هستند تفکیک قوا ندارند باننده مثلا دولت سعودی همسال اینا که تفکیک قوا ندارند اونجا قدرت قاهر سلطانه و همه او هستند. کسی اختیاری نداره استقلالی نداره کشورهایی هستند که قدرت رو دو قطبی تقسیم کردن مثل ایمبریکا مثلا میگن قوه مجریه و قوه مقننه عملا یکیست چون رئیس دیوان عالی رو که به شبیه به رئیس قوه قضایه ماست رئیس جمهور منصوب میکنه و دوباره رئیس, دوباره رئیس قوه یا همین رئیس دیوان عالی باید صلاحیت و صحت انتخابات رئیسیم تایید تأیید کنه اونجا کسی در نمیاد بگه دور لازم میاد امریکایی ها به ما ایراد میگیرن که شما گرفتار دورید شروع نگهبان که شش وقدان دان مجلس انتخاب میکنیم شش فقیه رو ولی فقیه انتخاب میکنیم چون بر انتخابات ناظرند و صلاحیت های کاندیده ها و نامزد ها و بعدم هم سهت انتخابات رو تایید میکنن. اون وقت پس بنابراین این دور لازم میاد اونو خودشون نمیگن که اصلا رئیس اون منصبی رو که جایگاه رئیس قوی قضایت رئیس جمهور باید حکم بده در این حال همون آقام باید سلاحیت رئیس شمور و سهت انتخاب رئیس شمور رو تایید کنه. حمله در واقع دو قوه نیست یعنی یه قوه وست قوه موضوع یکیه چیه به اسطلاه گفت که خودش به اسطلاه میدوزه و خودش هم میپوشه خودش قانون میذاره و خودش هم اجرام میکنه بعد در واقع قوه مقننه جداست قوه مقننه <تصفيق> چون عمومن حزبیه، عملا جدا نمیشه در عمل چون است به اون رئیس جمهور که گاهی رئیس حزبه که میشه رئیس جمهور دیگه در غیر میفته قوی مقننن. عملا گاهی قوی مقننن هم تحت تنول و سیتره قوی مجلیه است و اینو میگن تفکیک قوای نسبی تفکیه قوای غیرواقعی بعضی جا هم برعکسه. بعضی جا هم قوه مجریه با قضا با مقن به صلاح جایی مجریه با مقنن یکیست جایی مجریه با قضایی یکیست در بعضی جا هم به صلاح وضعیت این طوریست بعضی جا هم ای هم شبیه کشور خودمون در حال حاضر در هر حال اینا همه الگوهای حکمرانیان نه نظام البته مثلا اگر اصل استقلال قوا رو به مساوی یک اصل بنیادین در حکومت تلقی بکنیم اون اصل جز نظامه اما اینکه چگونه سازماندهی کنیم چگونه تقسیم قدرت بشه چگونه نگاشت نهادی صورت پذیره اینها در واقع همه به اولگو مربوط میشه در, در متن شریعت هم اولگو نابد مطرح شد اولگو متغیرن حسب اقتصاد در رای میشن ظروف زمکانی در اونها تأثیر میگذاره به نتیجه نمیشود یه اولگوی واحدی رو و لازم نیست این مقدار به قول اغلا واگذار شده به این جهته که مثلا شرایط رئیس قوی غذاییه یا رئیس قوی مجدیه یا رئیس قوی مغننه در مثل شریعت نیامده بر اینکه چون این طی تی قرون نبوده و الان دو غر نیست، سغر نیست داره اجرا میشه یه قرن دیگه امکنستن کلا به هم بخوری یه والگوی دیگه بیاد لحاظه اینا اناسا ثابت نیستن این جهتشو من لازم بود توضیح بدم که تصور نشه که مثلا در شریعت ما یک نقصی هست نخیر در شریعت همینه در حکمت سیاسی و فلسفه هم همیتونه. مثلا عرستو که کتاب سیاست نوشته یه چه بعضی میگن این تقسیمات از عرستو احس شده مثلا تفکیک که ریشه دارد در... در واقع م... کلمات عرستو در کتاب سیاست او میگن اینطور ولی در متن سیاست چیزی اشاره حتی به تفکیه قوا وجود نداره اگر اینه که ما اوائل همین محور مروت به قوی غذایی خاطر داشته باشید نقل کردیم از دوری معمون این منصب قاضی قضاتی جعل شده و عمل شده اگر اینه که خب باید که در دوری خلاف های عباسی اصلا مقولی تفکیک قواه جعل شده و مقدمه بر که انگلیسی فیصوف انگلیسی که خب موادی این تفکیق قواه رو مطرح کرده و همچنین متسکی در روح القوانین که مبادی این قضیه رو مطرح کرده جلوتر از منترسکوی فرانسوی و جانلا که انگلیسی اون حقوق دان به این فیلسوف این مسئله از ناهی بلالعباس مطرح شده خلافای عباسی مطرح شده خلافای عباسی هم متأثر از سلاتین ایرانی بودن غالبا چون که منترسکو هم که در واقع صاحب این نظریه تفکیک قوا داد میشه دو تا کتاب مهم داره یکی کتابی است که در دوره اختراق نوشته و به اصطلاح محرمانه و بینامون نشان اول اسمش هست های ایرانی و دومی هم کتاب روح القوانین کهاردو فارسی ترجمه شده و میشود حسرت که او هم باز از ایران متاثر بوده است در هر حال اگر در متن شریعت راجع به منصب رئیس قوه غذایی و قاضل القضاوت و احیانا مواصفات چنین شأنی و احیانا شعون و اختیارات و وظایف و واجبات چنین منصبی سخن به میان نیامده الا که اینو اولگو نه نظام یعنی خود جمهوری اسلامیام نظام نیست جمع اسلامیم یه الگوی حکومتیه اینطور نیست که اگر مثلا این ساختاری که الان در قرون اصاسی فعیلی آمده اگر روزی سلاح دیده شد که قرون اصاسی اصلاح شد و این ساختار تغییر کنه نظام دیگه اسلامی نیست نخیل نظام اسلامی الگو یه الگوی دیگه شد الان ما از یه الگو پیراوی میکنیم تلفیقیست به نحوی که در این حفظ جایگاه ولایت مرمان محور و گرانگاه حکمرانی از اون من قباری سگانه را هم پذیرفتیم و امتیاز قانون اساسی ما امتیازات بسیاری داره از جمله این است که در سایر کشورها که بحث دو قطبی یا سه قطبی کردن قدرت مطرح است. اونجاها عملاً عملا ممکن نیست قوة. استقلال قبا علال اطلاق محاله نسبی ممکنه چون اگر سه قوه مطلقا از هم مستقل باشن کشور میشه مجموع جزایر هیچ یک بر دیگری تسلط نداره بلکه میگن که هر قوه قوه دیگر رو باید کنترل کنه نظارت بر قوه دیگر داشته باشه و اون موقع به ها شروع میشه اون موقع این قوه یه باج به با اون میده اونم به این یه میده و هم کنار میان اما در نظام این ساختار فعلی جمهوری اسلامی این امکان از به این رفته قبا به هم بدهکار نیستن بالا سر قبا یه روک نیست به نام ولی امر و الو اتفاقی که هم این همه ها را انجام میده هم نظارت بر تقدی و تخلف میکنه و هم اون جایی که مسلحت باشد و باید ورود کنه ورود میکنه اگر گری به وجود آمد او ورود میکنه گره گشاست مساله مجمع تشکیل مطرح میشه و مسائلی از این قبیل یکی از نظریه های جدید اتفاقا همین است که بین قبای سگانه باید یک روکن فراتری باشه که این ثقوبه رو هماهنگ هم کنه بر ثقوبه نظارت کنه تقلفاتش کنترل کنه اگر گرهی افتاد باز کنه که در حد این قواه نیست مثل ما که مثلا اگر مشکلی پیش بیاد بین قوه مثلا مغننه و قوه دیگری خب مه تشیلیص میتونه ورود کنه و ورود میکنه. در قانون بزاری احیانا بین بینور گهبان و مجلس اگر معضلی پیش بیاد یا در کل کشور معضلی رخ بده که از عهده قواه بر نمیاد اینا ارجااب شده. مجموع التشخیص و دخالت ولی امر خب این یه امتیازی است که متناسب با همین نظریه جدید خب با توجه به این توضیحات که عرض کردیم از شد که ما ناچاریم مواصفاتی رو که قضاط دارند اجمالان مرور کنیم و با دلیل فهوا اثبات کنیم که این مواصفاتی که برای قاضی عادی ما قائلیم همین مواصفات رو برای قاضل غزات و رئیس قوهی غزایی باید قائل باشیم بلکه به طریق اولا و بلکه این محصوات رو به اشد در شماید را کنیم ما با این مبنا داریم بیریم جلو در وقتی میخوانیم مسئله رو حل کنیم خب این بحث رو کسی نکرده ببینیم به چه شیوه و نمت و طریقی این مسئله رو میشه حق کرد. ما این طریق رو داریم عرض میکنیم خب الان ورود کنیم به بعضی از ادله. مثل که داریم ما این است که ما یعنی که نیستدال به علاوه تبار اجتهاد و فی رئیس السلطه با اقتداء الاولویه فسوف یاتی فی محله البحث المشبع آن، فنكتفی به ذكر الان نموزجان و هو کتالی. خب ما راجع به اون عدلهی که مواصفات قاضی رو بحث میکنه رو هنوز نرسیدیم زمانی که برسیم به اون چه مربوط به گذات میشود اونجا خب به تفصیل بحث خواهیم کرد و به اشباق بحث رو خواهیم رسند به ناچار با ترجمه این که به همون عدله میخوایم تمسک کنیم و به زمینه دلیل فهوا و اولویت خب طبعا همون ادله رو مختصری باید مرور کنیم و با یه مرور میخوایم مسئله رو به اصلاح کنیم و عبور کنیم تفسیر رو در همون شرایط قاضی اینشان رو بحث کنیم اول مسئله اینست که طبق رویهی که بودر ترهم مسائل و شروع استدلال داریم اشاره می کنیم به اشاره میکنیم به اقتضای فطرت سپس قضاوت عقل بعد کتاب بعد سنت بعد احیانا اجماع و احیانا مراجعه میکنیم به قواعد فقیه و احیانا باز مراجعه میکنیم به ارتکازات اغلا و ارتکازات متشغل با این, روال، با این فرایان بحثات رو دنبال میکنیم در این که فترت سپاک نامخدوش و عقل سلیم اقتضاق میکنه که کسی که در جایگاه رئیس قوه است با توجه به اونچه که از شعون و اختیارات و وظایف برای رئیس قوه بحث خواهیم کرد و برخواهیم شمرد این پجدانن انسان مییابد تصور اینکه یان چنین منصبی است یان چنین است چون این وظایفی دارد چون این اختیاراتی دارد چون شؤونی دارد خوب که تصور کنیم رئیس قوه چه کسی است چه جور آدمی است چه شعنیتی داره چه منصبی داره خیلی راحت میفهمیم که جز به امتلاک قوه اجتهاد چه منصبی تعقل افتنی نیست اون ام امکان نداره کسی بدون این مواصفاتی که مجبون بحث میکنیم که از اهم اونها اجتهاده کسی چون این شعنیتی و منصبی رو بتونه اداره کن این خیلی واضح جای انکار نداره اولا لیسه به خفیه ان الفطرت النقیه و الاغل السلیم اختزیان به اختیام به به همین که این شرط هست فا انهو نظرن الى هست. سنبحث انشعون و اختیارات و واجبات رئیس سلطه الله موافق. سیتبین انهو لا یسع ان یقوم علا شیئن منها الا بامتلاک مباسفات لازمت لها و من اهمها هیلش داد این ما بعد انشاءالله مجموعه شعون و اختیارات و واجبات رو که برای رئیس قوه قائلین بعدن توضیح خواهیم داد با توضیح اون روشن میشه که هیچ یک از این یالاقل لاغل این شؤون اختیارات و باجبات و وظایف تحقق یافتنی نیست او قادر نخواهد بود اون وظایف را انجام بده اون اختیارات رو اعمال کنه اون شؤون رو از عهده بر بیاد الا بامتلاکه المواصفات الله تعالی جز اینکه این مواصفاتی که لازمه لازمی اونهاست رو دارا باشه که از مهمترین این مواصفات و من اهمها های الاجتهاد این یک تبیین فطری عقلی به اشمال این اولا و ثانیان ما میدونیم که هم قبلان بحث کردیم قضا یه امر ولایه از شعون ولیه وقتی از شؤون ولیه ولایت در جای خودش باز اثبات کردیم به موقع از آن رسول خدا حضرات ائمه معصولی سامو علیه همه و نیابتن از آن فقهای های واجد شرایط و جامعه شرایط. این هم در جای خودش اثبات شدیم سلوتات قواه سگانه اینها ها ولی امرند بازوان ولی امرند اینطور نیست که فکر کنین رئیس قوه مجریه دارای ولایته رأسن و مستقلن رئیس قوه مغنن رأسن و مستقلن دارای ولایته رئیس قوه قضائیه حتی رأسن در ظرف حکومت رأسن و مستقلن دارای ولایته اینجور نیست بلکه اینها هر سه به نهوی شعبی از شعب ولایت کبرا رو دارن اداره می کنند در واقع این اداره شعبی و شاخی از شعون و و اختیارات امامت کوبرا رو بر عهده و اعزاد ولی امرند و قهران مثل اصل ولایت کبرا نیازه به نسب داره دوز اینه. مگر بدون نسب میشه هر کسی بیاد ادعا کنه بگه من ولی امرم اگر صلاحیت لازم نباشد و فرد مثلاق اون قضیه حیقیه نباشد که از معصوم صادر شده و اینی جعل تو علیکم حاکما اگر این نباشه که ولایت نداره سؤال آیا غیر فقیه جامع غیر فقیه جامع شرایط افتاق منصوب است؟ اثبات میشه بلکه عکسش اثبات شده کسی که واقد شرایط حسب ادله او منصوب نیست در واقع اگر ما بخوایم اینطوری فکر کنیم که بگیم آقا بریم سراغ است این آقا میخواد خود بشه رئیس قوی قضاییه بشه رئیس قوی موجیدیه رئیس قوی مخندنه رحصا میتونه اصلی اینکه نه نمیتونه کسی که فاقد قوی اجتهاده آیا میتواند رئیس قوی قضاییه بشود؟ اقلش این که شک داریم بشود وارد از سایر داریم می‌خوایم یه جوری تغییر اصل بکنیم و معلومه که این جور نیست اصل خلافشه با توجه به مجموعه ادله که هم حیث اثبات و هم ای حیث سلب و انکار رو ادله داریم داریم که فرد جامع شرایط منسوب است در این که فرد فاقد شرایط منصوب نیست با توجه به این خب راجع به رئیس قوهی غذایه میتونیم هم میارفو بزنیم آیا او بدون قو... قوی اجتهاد میتونی این منصب رو احراز کنه میشود فرد غیر مشتهد اهددار شود و احیانا اگر از این مرحله عبور کنیم بگیم که خب منصوب من قبل ولی امره که گفتیم خب منصوب من قبل ولی امر سه وضعیت داره از مرمایشتیانی رضا اونتانه هم کردیم شون گفتن در سه وضعیت باید بررسی شه یک اینکه این آقا حالا اشون راجب غازی کنم و بگیم رئیس قویق این آقا استقلالاً میخواد احتدار شه. دو این که منصوب از قبل تهد جامعه باشه به نیابت از او به اعتبار نسبه از قبل او اهددا شود سوم این که به وکالت از ناهی ولی هم یا فقیه جامعه خب در وکالت بحثه نیست برای اینکه در اون صورت قاضی نیست او عامل کارگزار کار است، قضاوت نمی کنه او کارگزاره مثل قاضی تحکیم که مشتهدم نبود دو طرف مخاصمه تا توافق میکنم بریم شفلانی ریستاکی در محله هرچیو گفت و تم بدیم اگر گفت و هر دو طرف هم راضیان این ششکالی نتید ولی اون مشتهد ده عوام عوامه ولی آدم متدعینه معتمد سالم محله است مرد قبول محله است پس ویکالت این اما در مسئله نیابت و مسئله در هر حال استقلال در استقلال که خیلی روشن کسی که بخواد رأسن مستقل از فرض کنیم در شرایطی که حکومت دینی برقرار نیست یک مشتهدی در یک شهر مشتهد تبریزه مشتهد تهران مشتهد اسفحانه اونجا مستقله آیا او رأسن میتونه اقدام کنه اگر مشتهد نباشه نه چون نصب واقع نشده بر خلاف اینه احیانا در نیابت چی؟ خب اگر مسئله انتصاب اصل انتصاب از قبل مشتهد مشتهد مشتهد جامعه فقیه جامعه مجاز باشد کسی رو نصب کند خب اگر به عنوان وکالت نصب کل گفتیم مشکل داره اما نیابت یعنی به عنوان بازوی او خب قهران معلومه در عمل چون این کسی قادر به اگر مشترد نباشه در عمل قادر به اداره این شعون نیست در هر حال اقل مطلب این است که مسئله مورد تردید و شک است اگر این اصل عدم آن است ولی زا ارز کردیم فلاصل عدم مستحط قضاء غیر الفقی جامع بعد جواز رئاستهی و عدم نفاظ تصرفاتی فی مساحات شعون و الاختیارات و الواجبات المتعلقه به منصبه این البته به که هم قاضی رو هم رئیس قوار رو گفتیم گفتیم به منصبه این پس اصلا اختزاش اشتهاد است سوم مسئله که باز چون گفتیم داریم مروبی و اجمالا میخواییم عبور کنیم داریم به سرعت بریم جلو سوم امر آیات به بعضی آیات میشه اشاره کنیم آیاتم هم بسیاره از سه سعایه که در سوری ما ادا آمده و معروف است اعوه بالله من نشنقان الرجیم و من لم به ما انزل الله فا اولائه که همو کافرون آیه بعدیش و من لم یحکم به ما انزل الله فا اولائه که همو والمون دعای بعد از اون و من لم یحکم به ما انزلالله و اولاکه همون مل فاسقون و سعایه قناعت کنیم توضیح بخواییم بدیم تغییر بخوایم بکنیم اینطوری میشه و من لم یحکم به ما الله و اولاکه همون کافرون آیا غیر موجتحد اصلا ما انزل الله رو میدونه؟ آیا مشرفه بر ما انزلاللهه؟ الله میگه خب بله دیگه یه آدم خوش استعداد میره از مشتهد میپرسه که آقا ما انزل الله چی اینجا اون مشتهد بشون که ما اینه سال در یک فرایند دادرسی چند تا تو سوال تولید میشه که ما انظر الله رو مطالبه میکنه و باید به ما انظر الله جواب سالار رو بدیم مثلا توی پرونده خیال میکنید فقط یه مسئله است دوستری هم بریم از مشته سال کنیم و هم بفرماد این به کل رات در یه پرونده هم تا ابهامات متعدهی مطرح میشه آیا قاضی و یه فرونده رو مثلا در روز بررسی کنه و هر روز بره به ولی امر مراجعه کنه و به فقیه جامعه مراجعه کنه یه گونه فرونده یک دونه فرونده جلی نیست وانگهی اگر بگیم اینجوره یعنی هر مسئله ای که پیش میاد خب این مقلد از دیگه مشتہد که نیست که خودش راساً همونجوری تونش داد کنه هر مسئله که پیش میاد هی باید بره بپرسه این که قضاوت نمی کنه چه وکیلی که گفتیم حتی اول دووام هم نیست نیابت وکالت میشه این الان قضاوت نمی کنه که این گویی به مسئله رو بررسی میکنه هی خوب میشه میری میپرسه اون میگه اینجوری کن اینجور الان قضاوت کن سعوده را غذابت میکنه اون میگه حکمش اینه پس در اون فرقی جامعه داره حکم میکنه اینجا این مثل نامرسون میمونه مثل سایر در واقع اوامل و کارگزاران و فرایند دادرسیمون که احیانم ممکن مشتهت نباشن این به این مرتبت مراجعه کنن اون رو مراجعه میکنه اصلا مسئله نیست که ای اونم در حالا قاضی عادی رو داره میگیم اونم در شرایطی که بس از ریاست قبع قضایی است وقت ما آمدیم در قضا اشتهاد و پذیل افتیم. این مشرفه بر این قضا باید باشه. تازه باید ایو و ایراد قضا رو او کنترل کنه. تخطی و تخلف اینها رو تازه او باید رسیدی کنه. قاضی قضا تو دیگه. بعضی از احکام رو که قضاط صادر میکنند باز مرحله نهاییشو لاغل در روند قضایی ایران اینطوریه مثلا احکام ها رو باز بعد بره تو دفتر قاضی و رئیس قوه و احکام اعداما و در شورای رئیس قوه قضاییه تایید شد با این اوصاف آیا میشه که رئیس قوه قضاییه مشتهد نباشه یک دهم این باشه به اینون نگاه کنه از امکان داره و تونه طبقه حکم خودش رعصن اگه بخواد رعصن حکم کنه این واقع جز کسانی میشه که لا یحکم به منظر الله اگر به این شکلی که میگیم بخواد حکم کنه که حکم نمی در واقع او حکم نیست اصلا اما اگر خودش رعصن بخواد حکم کنه که لا یحکم به منظر الله این خاطر نیست اصلا نتیجهش حسب آیه اول و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم کافرون شرط اسلام و ایمان ساقط میشه فاولئک هم کافرون حسب ظاهر آیه کوف کفر کلامیه کسی چون این کاری بکنه کافره مگه در شرط اسلام و ایمان تردیدی هست این شرط از از بمیره چنان که در زیل دعای دیگه می هم میخوان تغییر کنیم اونجا هم و من لم یحکم به ما اندلالله فاقلا که همون والمون و من لم یحکم به ما الله فاقلا که همون فاسق و ظالم آدله و شرط عدالت هم زی سآل میره آسیب بیبینه که مخدوش مختوش میشه چون قادر نیست به ما انزال الله کنه چون مجتهد نیست چون مشرف نیست این نمیتونه اتفاق بیفته نتیجهش میشه که سایر مواصفات و اوصفش هم تازه مختوش میشه فقط بحث اجتاد نمیشه مسئله عدالتش مسئله اسلام و ایمانش اونام به مخاطره میفته ازبالا ما میتونیم حسد همین آیات فقط بگیم از کنیم که حسد آیات قرآنی هم مثل اجتهاد برای هم قاضی هم رئیس قوفه شرط است و ثالثا تدلو على الاعتبار بعض ال آیات که مثل قوله و من لم یحکم به ما انزلالله فولا و چم هم الكافرون فا این غیر المشتد لا یسع ان یحکم به ما الله فکانه لو تدخله فالحکم والقضا یا انسلخ عنه بسبل اسلام والنامان بسبل اسلام و ایمان یش آمت زهبProfیر موقاتر میوت مانه جواز تدخل فی رحن ثبوت الاسلام و قطعا و همچنین بقوله و من لم یحکم بمنذر الله فعل Remain ویاسدمان ویمان و من لم یحکم بمنذر الله فعل Remain فانه بسبل عدالا فکانه لو تدخله فالحکم والقضا یا عدالة من جواز تدخل پیران ثبوت قطعا و من تحاکم الیه فی حق او باطل و هم گرفتیم از روایت و انما تحاکم الا تاغوت مردم هم گناه میکنن اگه به این مراجعه کنن اینکه گناه میکنه عهده دار قضاشه مردم نباید مراجعه کنن مردم مرتکب حرام میشن اگر به این مراجعه کنن و ما یحکم لهو فإنه ما خود صحته و ان کان حقا ثابتا له لان الناس قد یک فروبه این هم نگاه قرآنی و مسئله که روایات رزفر میید بهمون وری جرسی ودیشان ها و سلامان محمد با